جالا سید شیل دو بان مجموید اسمین ایز یابول لا تحزن این الله معنا لا تحزن این الله معنا خب الان نگاه کنیم اما هم میدونی آیه در مورد کدوم وضیه است قضیه یه که پیغمبر اکرم از مکه هجرت کرد به مدینه و یک نفری هم همداش بود که شبانه رفت و آقا امیر و محرینی به جاش بیتوت فرمود یک نفری هم همداش بود که بود؟ آقای ابو خب میگه چی؟ میگه اگر شما یاری نکردید به رو مشکلی نیست خدا پیانبرش رو یاری کرده که خدا پیانبرش رو یاری کرده؟ از ما. این از ظرف از متعلق است که اون فقط نصره الله از الان از به چی داخل شده؟ به جمله بهلیه چی؟ مازی که حکلش هم مازیه از اخرجه هون لذینه کفرون ثانیه ازلی در حالی که خدا کمکش کرد در حالی خدا کمکش کرد در وقتی خدا کمکش کرد که کافرین اون رو از مکه بیرون کردن در حالی که یکی از اون دوتا سانی از نه. یکی از دو نفر این دو نفر بودن یکیش بیغفر از خمافل غار زمانی که این دوتا در غار در خالش بود ها اینجا به چی داخل شده ازم داخل شده جمله اسمیه از اما فلغار از یقولو لساهبه از یقولو لساهبه اینجا داخل شده بچه و به مزاره اما این مزاره حکایت حال زمان ماضی رو می و یعنی از غارن لساهبه واسه خاطر خواستی حیعت گفتم رو نشون بده گفته یهو هست بنابراین ممکنه هست بر سر مزاره هم بعدش در بیاد جنبه بعدش مزاره باشه اما اون مزاره در تحویل چیه؟ در معنای چیه؟ مازیه هست یهو به صاحبی هی زمانی که پیغمبر به اون همراهش میپرمود که لا تخزم این لا همه همه همه نشست محسون نباش بیتابی نکن خدا با ماست بروش شد؟ پس این آیه از اول زرف برای نظره از دوپم و سپم اگه بدل باشه حالا فرض کنیم بدل از دوپم و سپم اونا میشن خود زرف دیگه چون بدل جای مدنمه نمیشون این مثال این آیه هم مثال برای جمله فعلیه هم مثال برای جمله اسمیه و همین که میگه جمعه فیلیه ممکنه که بعدش فیل مزاره باشه او مزاره ظاهرش مزاره باطنن چیه؟ از یوول لساحبه لا تحزن لا ها و ها وقد یوزاخ و ادعی ها یعنی الائز اسم و زمان و گاه اوقات اضافه میشه به سوی از اسم زمان یعنی اسم زمان دیگه بهش چیه اضافه میشه مثل هین مثل بعد رب بنا لا توزق با زیرهی و غیر حدو بنا بعد از حده ایتنا. حالا تنا اضافه شده بشیم به جمله حده ای فعل ماضی اما خود اسم مزافن الهی کی شده ها مزافن الهی بعد دیگه بعد بهشتی شده وقد یوزاک و, و, و الهی ها اسم ها زمانه رب بنا الله توزق قلور بنا. خدا خدای این نده این قلب های ما رو بعد از حده شده. بعد از این که هدایتشون کردیم و ما رو هدایت کردی، دیگه گمراه حالا اگر مزافره لعیه از شده باشه که مثل بعد از حدایی تنها هیچ مشکلی نده اگر مزافره لعیه ذکر نشه می افتد لعیه عوض از مزافره لعیه چی میاد؟ آن؟ هندین یه, نخ... یه قسمت از دنبین رو گوهید دنبین عوض هست؟ جنبه هست مثل هینه ازن زن ازن یومه ازن آه؟ این چی بوده هینه ازن؟ هینه از کانکزا یومه از کانکزا این جمله بوده کانکزا کنایه از این جمله بعد اون جمله افتاده تنوین اومده تنوین التقا ساکنه پیدا کرده با زال بچه شده؟ ازه ده از ساکنه اینه رو بکبوزه کرد بیرکز کسری دادن گفتن چی؟ هینه از این تنوینه چنان عوضیه؟ تنوینه عوض آه تمویل عوض هست میگه از برای مفاجات هم میاد مثل ازای کجایی هست که برای ناگهانی میاد میگه از برای مفاجات میاد ولی مفاجات بعد بینما و بیننا میگه بعد از بینما میاد کلمه بینما یا بعد از کلمه بی چی داره ما شما؟ بی ننا نوشته غلطه بی بعد از کلمه بین میاد که یا بعدش ما باشه بی یا بعدش علف باشه بی بعد از این دوتایی کلمه بین از چی؟ ظروف دائمال اضافه ظروف دائمال اضافه این ما و علف که بینما و بینما میشه این کاب بس جلو عمل بین رو میگیره اون موقع دیگه این میتونه حتی بین میتونه اون موقع به جمله اسمیه یه فعلیه هم بگید اضافه شد. چرا جون دیگه عمل؟ نمو بینما بینما بعد میگه و حل هیه و حل هیه و آیا این از هینه ازن هینه ازن یعنی چی؟ یعنی هینه از کانل المفاجات، هینه از کانل المفاجات بعد بینما او بینما جا؟ حرفون او ظرف خلافون میگه آیا این ات در این انگامی که بعد از بینما یا بیناست و برای مفاجات حرف و محله را نداره یا ظرف و محلن چیه منصوره میگه اختلاف دارن یه ات دو گفتن حرفه یه ات دو گفتن چیه ظرف خلاف یه مثال خاشیه سه کتاب رو ببینید یعنی از میگه اون زمینه هیه میفوره به از هینه ازن یعنی هینه از وردد اون علف ازار میشه خوده هینه از وردد للمفاجات یعنی زمانی که وارد شد از برای چیز مفاجات بعد از بینما او بینا. بعد از بینما یا بینا. ظرف و مکان بعضی گفتن ظرف مکان او زمان بعضی گفتن ظرف چیه زمان مشخصه او حرفون یا بعضی گفتن چیه حرف یدول و حلل که دلالت میکند بر مفاجات فی غیرهی در غیر آلت زرفی دلالت بر مفاجات میکنی حرفی دلالت بر مفاجات در غیر خودش میکنه یعنی اون معنای عبارتی که داری او محکدون بعضی گفتن چیه؟ محکده ای زائدون میگه منزورش از محکد یعنی هر حرف زائدی مفید چیه؟ تحقیده میگه خیلیه خلاف خب معلومه بین اینکه این مؤكد بشه که قول بسیار ضعیفی بوده ضاییده باشه لذا شیخ بها فقط چی رو نام کرد حرف اون ظرف ظرفم گفتم دیگه ظرف دیگه حالا مطلق گذاشتی یه دو گفتن زرف زمان یه دو گفتن ظرف فإذا قلت حالا مثالش رو نگاه کنیم فإذا قلت بینا او بینا ما آنقا ایمان از آقبلا عمل، از اقبل امرون. یعنی چی؟ یعنی بین ما معنی از آقبلا امرون یعنی در هنگامی که ما من ایستاده بودم ناگهان چهان کی عمل می‌کرد. مرا جمله اینه. هنگامی که من ایستاده بودم ناگهان چهان ام اومد مشغلت خب حالا بینا یا بینا که زرفه بروش شو زرفه و اون ما و علف بهشون میگم ما و علفه چی؟ کافه ما با چی کافه چرا بشه میگن کافه؟ چون قبل از اینکه اینها بیان به این بعد اضافه میشد به چی؟ به مفرد حالا که اضافه به مفرد نمیشه پشتش میبینه انم قایمون چونده انم مفتد آقایمون خبر مشخصه و بعضی هم گفتم بین اضافه شده در این صورت ما از عمل جوش گرفته اضافه شده جمله. حالا کار نداریم بین زر جمله انقایمون هم مضاف و به بین بین جمله جمعه انقایمون مضاف و نلیه مضاف و بین از اغلب امرون چیه؟ از رو شما بگیرید هر که قول قدیدتر اینه که ازای خجایی عمل ندارم از حرف و برای مفاجات و عمل هم بگیرید نداره اقبل فیل امرون قاعد و اون بین ظرف است متعلق است به اقبل است به الان این است متعلق است به اقبل است مشخصه؟ اران نگاه کنید اینطور میشه عبارت به از بالاش به نوستید بوجهتن یعنی ناگهان درست شد؟ و ازم امر اقبل امرو اقبل امرو بلو به جای بینما یا بینما می هینا هینه چون ظرف دیگه ها هینه انا قائمون مشخص انانوامون مقطدا خبر جمله مزاف لی بین مزاف لایم اون حین میشه که جای بینه و عبارت این ظرفت متعلقه بگی بر. یعنی میشه چی ؟ یعنی بین این که زمانی که من ایستاده بودم ناگهان ام آمد وارد شد. این قول بنابر اینه که این چی باشه حرف باشه. و محل اعرابی نداشته میشه اما اگه زرخ باشه تدکیبش مشکل میشه که جاش اینجا نیست پس بنابراین ما یاد گرفتیم که از از فجایی چی میاد؟ از فجایی بعد از بینما یا بینما میان و بینما و بینما بعدش یه جمله واقع شده و این ما باعث شده که اینا به جمله وارد بشن اضافه بشن و از قول قبی که حرفه و متعلق هم لازم نداره مثال کلیشه ایش هم یاد میگیریم بینما یا بینما انقائما از عقبله امرون این مثال رو یاد میگیریم ترکیبش هم یاد میگیریم که بینما و بینا در متعلق به عقبله انا قایمون جمله مضافه دایه بینما یا بینا درست شو و اقبل فعل و امران با ای. این ترکیب نیاز میگیریم، این عبارت مشخص است و للمفاجات برای مفاجات میاد بعد از بینما یا بیننا و حد یهینه زن حرف او ظرفه خلاف. آیا حرف از یا ظرف از خلافه حرف رو هم مقدم کرده چون قول به حرفیتش بیشتر خب ازا ازا چیه؟ میگه ازا تر تو زرفن للمستقبه اذا وارد میشه زرد برای مستقبل مستقبل حقیقی یا معنی مستقبل زمانی نه اینکه حتما باید بعدش فعل مزاره باشه اذا جونسر الله بعد بعد ها بلکه منظور چیه یعنی فعلی که ما بعدش هست برش زمانش مستقبلی ولو اینکه ماضی باشه ماضی در اینجا بعد از اذا میشه چی زمانش اضا تردو ظرفان در مستقبل فتوزا و علا شرطه اضافه میشه به سوی شرطش. فتوزا شرطها و علا شرطه وطن و تن سبب جواب ما و منسوب میشه به چی به جوابش رو ما همیشه گفتیم رضا اضافه میشه به شرط خودش و منصوبات به جزای شرطش. یعنی ازا جاهنس ر الله و بعد جاهنس ر میشه چی مزاقون الهی حضا و فعل خود حضا ظرف است محفول اونفی است برای اون فصف بهی که جزای شد و تخت است و بالفعلیت و این حتما باید به جمله فعلی داخل شد چون فعل شرط ما داریم هیچ موقع اسم شرط این جمله اسمیهی ای که بعد بیاد به جای شرط رو کنه ما و رو به فعیلیت میگیم خب از مثالهایی تو قرآن هست مثل این مثال از از و این ازا از سماعو انشققت ازا از سماعو انشققت این از سماعو ظاهرش اینه که است انشققت چیه؟ یعنی نصف بشه تکه بشه خبرشه میگه نه اشتباه نکنی بلکه اینو بهش میگن از بابه نه اشتغال نگفتیم یه اسم دیگه گذاشتیم گفتیم باب تفسیر مثل ان اهدون منر مشرکی نه استجاره که فهجره خوندیم مثال که گفتیم اهدون که بعد از این واقع شده این اهدون مبتدا نیست و منر مشرکی نه صفتشو استجار که فعجره. چون ان شرطیه ازای شرطیه بر سر جنبه اسمیه در نمیاد بلکه چیه این این فائل یک فعل مقدر که این فعل مذکورون چه کارش میکنه؟ تفسیرش میکنه اینجا بوده ازا انشقت سماع انشقت این, این میگیم ازا ازای شرطیه اضافه میشه به فعل شرط منسوب به جزای شرط از سماو فائل یه انشقت مقدر که این انشقت مذکور تفسیرش میکنه جمله مضافنه لیه ازا جزای شدش هم به دنباه شه که ناسبه میگه و نحو از از سماه این شد مثلو و این اهدون می در مشرکینه که فعجر بود یعنی اگر یکی از مشرکینه از تو چیه پناه خواهد تو کارش کن فناه بده و بود اهدون فایل یه استجارکه مغدره که این استجارکه تفسیرش میکنه منال مشرکین هم صفت اهدونه جا رو بعد از نکرسن به هجرمه جزای شرط. جبله انشایی بوده با هم خب این مال اعضای شرطیه بود میگه ولی و وگاهی اوقات برای چیه؟ مفاجات اعضایه خجاییه که باید از من به چی داخل چه جمعه اسمیه فتخت و اسمیه به اسمیه مختص است به جمله اسمیه نه و خرشت و فعضا از او با کن از خونه اومدم بیرون پس ناگهان در رنده ایستاده بود از سبعه واقع اون سبعه ایستاده بود خرشت تو رو باید آیا این ازا زرف اضافه شده به ما بعدش یا این ازا حرف هست میگه ول خلاف ها که اخت ها خلاف در این ازایه کجاییه مثل نزیدش ازه کجاییه یا حرف هست یا ظرف زر... هست دارم؟ ما در اونجا گفتیم قول قبی چیه؟ اینجا حرفت اینجا هم قول قبی اینه که حرفت بگیم قرشتو فعل و پایله ازا محل اعراوی ندارد قرشتو فعل و پایله پاپای فا سببیه ازا محل اعراوی ندارد حرفه برای مفاجات از طب اون مفتدا واقع پون مفتد مشخص امچ هم دو جور بود ام متصله ام منقطعه همه متصله دو جا می آمد کجا بود؟ بعد از همزه استفقام حقیقی و بعد از همزه تصویر. ام منقطعه کجا بود؟ غیر از این دو جا ام منقطعه معناش چی بود؟ به معنای همزه بود و بند آه. به معنای همزه بود و بل چرا بهش میگن منقطه؟ گفتیم چون ما بعد جدای هست ما قبلشه ربتید و ما قبل چون به معنای بله بله ازرابیه ازراب یعنی انتقال از کلام قبل و کلامه میگه ام ترد و لل عرب ام وارد میشه برای عرب متصلت و منقطه در حالی که برای در حالی که متصله یا منقبله فرمتصله تو اما متصلهش کنیم المرتبه تو ما بعد به ما قبل ما بعده مرتبه به ما قبل شه لفظن و معنه هر دو به ما قبله و تقع و بعد همزده تصویه و واقع میشه بعد همزده تصویه ول استفخامه اون هم استفخامه به چی؟ به همزه اونم چه نوع استفهامی به همزه؟ استفهام عدیدی خوب یاد میکریم بعد از همزه تذکیر مثالش مثل چی؟ سوا اون علیه هم انزد هم عملا سنزه که تحکیب کردیم سوا اون علیه مقدم انزد تا هم دعویل و مستر میزدید. میشه چی؟ انزاره که و انذار رو انزاره پس بعد از همزه تصفیه یا بعد از همزه استفحام حقیقی اولا باید همزه باشه استفحامش بعد ثانیه استفحام به همزش هم چی باشه؟ حقیقی باشه استفحام غیر حقیقی مثلا برا, برا تعجب، برای تعجب تحجب برای نفس یا جور چیزا نباشه واقعا سوال کردش مثل چی؟ از ایدون فت داره؟ ام؟, ام داره. اعنطم اشد دو خلقن همه اشد دو خلقن همه او انتم اشد دو خلقن همه الان مزاقه انتم اعنطم اشد دو خلقن چیه؟ ببرشه خلقن تمیز اشد خبرشه دیگه جا با می اومده میاد مفتد مزنکه را بعد ام السماء ام هم ام متصله عاطفه از سما اصل جای ان یعنی شما تعیین کنید برای تصور دیگه حمزه شما تعیین کنید که آیا شما شدت دارد خلقتتون سخت تره یا امورها او مجبور خب. مجبوریت کیه آسمون ها دیگه میگه خدای کی تونسین آسمون ها رو بیا نه آیا آجز از آفریدن شما سه طور دوباره از معال شما آجزه همه از آم مکنن پس بنابراین بعد از استفاق اونم استفاق حقیقی دو تا این مثال زنیمی که بر هم زیده از بیگر است منغطه میگه بل منغطه اتو کبل منغطه مثل بله بلکه منغطه مثل ابله یعنی هم حمزه استفخام هم بعد منقطه در هر کجایی که متصله شرایطش نباشه ست دست منقطه هست و در همه جاها به معنای حمزه هست بود الا در جایی که چیه بعد خوده هم اومده باشه استفخام اومده باشه در جایی که بعد از خود ام استفخام اومده اونجا نه اونجا اینطور نیست فقط به منایی بنه چون استفهام به استفهام دیگه داخل مثل حلیت فقیل لذینه یهلمون و لذینه لا یهلمون ام حل تسته به ظلمات و ام حل تسته به ظلمات و بنده این ام چنو همیه ام منقدر است چرا؟ بید بدنی که قبلش حل باغه شده استفهام به همزه حقیقی نیست تصویه خب این هم معناش چیه؟ میگه این هم معناش چیه؟ بله یعنی بله که میگیم بله همزه؟ میگه نه فقط بل میگیم چرا؟ میگه چون بعد از هم حل شده اگه ما یه همزم بیاریم استفان به استفان داخل میشه غلطه پس معنی اینه حلی هسته به یعلمون یعلمونه ولذینه لا یعلمون این حل به معنی نفیه یعنی آیا مصابیه اینایی که میدونن با اینایی که نمیدونن اونی که دانش دین داره با اونی که نداره یکی هم یعنی یکی نیستن. بعد برد میگه برد یعنی برد میگه برد که از این بالاتر بریم آیا هل تسته به ظلمات و, و نور آیا ساریکی ها با نور با هم یکیه این معلومه نه یکی پس منقطعه کبل گفتیم یعنی چی؟ یعنی که ابل یعنی هم همزه هم بله و یه جا هست که مثل بله بله کجا جایی که بعده استفاده. این دوتا میگه و هر و تعریفه میگه همزه حرف تعریف باقی میشه و هیه لغت و و این لغت آقایون همیری هاست یعنی چی؟ یعنی آقایون همیری ها به جایی که علفنام به کار ببرن چی به کار میبرن؟ ها همزه به منزله همزه یعنی همزه و به پایی بردن مشخصه هم میشه حرف تعریف و حرفو تعریفه و یه لغتو میگرد یعنی مثلا به جایی که بگن از میگن چی؟ ام سیام ها به جایی که بگن البر میگن چی؟ ام البه میگن ام الف رام به چی کار میبرن الف و میم این لحجه اینجا لغت به چه است. یعنی لحجه و هیه و این الف میم که به عنوان حرف تعریف به کار بره لحجه قبیله همیانه میایم سر اما با فتح و تشدید نه همه رو خود نید با تشدید یعنی فتح همزه و تشدیده می این چیه؟ میگه حرف رو تفصیده غالباً غالباً این دوست درست حرفیز برای تفصید میاد تفصید یعنی چی؟ یعنی توضیح و شهر دادن خب معلومی شو باید یه چیزی باشه قبلا مجمل باشه مختصر باشه که ما بیایم با این چی کارش کنیم توضیح ها؟ شرح میگه حرف تفصیل از خالبا مشخصه مم. مثلا من میگم جاال قوم پس اون این قوم سه نفرم میگم جاال قومو خدا در قرآنش این اما رو با همین شده که ما میدیم به کار قرآن تفسیر بگم جا الگوب اومد و شما میگید که اما بکتون فما آشون دو زید میدم بگم اما ده اینطوری اومد اما بکت اینطوری اومد اما خاله اینطور شما داستانه موسا و خضر نبی رو تو قرآن رو بینید اون اممس سفینت رو پسانت لما ساکین اممس جدارو و اممال غلام یایتون هسته نیست؟ شنیدید یا نه؟ اونجا میگه که هی کارهای مطمئنی رو خضر به دستور خدا کرد کارهای حکمت انگیز اما ظاهرش مطمئن هر از اونطور طور که که این چی گفت مگه نگفتم من سوال نکن بعد رسید به یه مرحله که کارهای مجمعه رو می‌خوادش کار کنه توضیح بده، تفصیل بده. گفت عمل سفینتو فکانت ده مسائل. اما اون کشتی که سوراخش کردم مالی یه دسته مسکین بود. یه بازجوی ظالمی میگیره و اینا از معاششون می‌افتادن. من سوراخ کردم معیف بشه دیگه اونها. عمل غلام فقان عباقه و مومنه اما قلام که در مادرش آدمانی درستی بودن این باعث قلامش امل جدار اما اون باری که باعثتی ما درستش کرد زیرش مالی بود مال یتیم ما این باری کرد یعنی اومد چی کار کرد؟ توزید تو قرآن که یوم و دو وجود و تصورت دو وجود روزی که یه اتصورت ها سیاره یه اتصورت ها سیاره اما الذين بعد شروع میکنن اما الذين اسودت وجوههم اما اونایی که صورتشون سیاه میترن اما الذين يدجزن یعنی اول یه بچمند دیگه بعد میاد دو وسیله اما چیکارش میکنه تفصیلش رو توضیحش میده و مطلبش رو شد. این غالبا نه غالبا یعنی چی یعنی 90 درصدی طوریه یه چند درصدی هم ممکنه اینطور نباشه مثل یه هایی که کتاب اما بعد فهادهی اینجا نبوده یه اما اما سه یکیش تفصیله یکیش تحکیله و یکیش چیه شرطیت شرطیت و تحکیدش در درصده اما تفصیلش چیه؟ خالبیه نوزده لذا این چون خالبی بوده مرحوم شهر بهش اسطناب شده خب پس برای این اول کتاب که میسه اما زیر نوید و اما ورد فلان این اما ها یا در جاهایی که برای تفصیل نیست فقط برای چیه؟ برای تحکید و برای تا شرطیه هست شرطیه هست رو میتونه میگه حرف و تفصیل این غالبا و ها معنی شرط و درش معنای شرط وجود داره میگه به چه دلیل میگه معنای شرط وجود داره میگه لزوم الف خاطر الف همیشه داره و این فا بر اثر چی در میاد جزای لزوم الف و ال ضد محض بشرط ها شرطش همیشه مفقوده که عام من هست. یعنی مهمایه کنه میشه هرچی که میخواد اتفاق بیاد خب همین که آمنه ترجیح رو میپهمه من میگم به شما یه دفعه اگر زید بیاد میام خب ممکنه بیام ممکنه نیام چون زید ممکنه بیاد ممکنه نیام ولی یه موقع بگم هر طور که بشه میام هر اتفاقی بیفته میام اگر اتفاقی بیفته میام حرفاً خب منو یه اتفاق میفته است میشه دیگه یعنی حتما این تاکید از اینجا فهمیده میشه که فعل شرطش چیه هر چقدر فعل شرط قوی باشه شرط جوابش چیه قوی هر چقدر ضعیف باشه جواب شرط چیه تا جایی میرسه که اگه فعل شرط محال شد جواب شرط هم میشه چی محال میگم اگه خورشید از مغرب طلوع کنه مم میاد یعنی چی چقدر قوی تر شد اون طرف چیه؟ قوی میشه این مهمایه میشه یعنی اگر اتفاقی بیافت خود مهمایه یه چیزی میشه دیگه اگر یه چیزی بشه می از من چرا شما یه چیزی قاعد و از توزم حتف و شرط ها و افت زبینه هم ها جز اون به ما پی ها و تعویض آورده میشه بین اما تعویض آورده میشه بین اما از جانب فیلش یعنی اون فیلی که حض شده فیل شرطش یه جز جز ای که مما بی حیضه ها جز ای که در فا بوده یعنی در حوضه استفادی بوده بعد از بوده. بهتون هست کتیم که اما فیل شرطش حض میشه بعد یک چیز از جزای شرط میاریم بین اما ها قرار دیدی تو فاصله اما سائله بلا تنها و اما غیتی بلا هست هر سائل و و اما به نعمت رب گیر بحث است چی اومد فاصله کرده جواب به نعمت رب ها اما سفینه تو و خانه چی اومده فاصله کرده؟ مبتده سفینه مبتده تو خانه آخر خبره دید. یک چیزی از ما حالا مفعول، فائل چیز مفعول، مبتدا خبر جار و مشروع یه چیزی میاد بین این اما و باز کار میکنه؟ فاصله میکنه تا اینکه اما وفا کنار هم نچسبن چرا چون اما نماینده عداد شرطه با نماینده جزا شرطه این دوتا بعد یه چیزی بینشون فاصله باشه دیگه بیا به هم بچسبن کو میگه جز علمه ما فی یزه و فیحه اقوالو میگه در این خصوص اقواله یعنی در این که چه چیزی فاصله میکنه؟ آیا این فاصله کننده نباید چه جنسی داشته باشه؟ روش بحث های زیادی کردن حالا یا مقتداست مثل اما و منتدا یا مفهوله مثل مسائل سایره هر یا جارو منظور یا ظرف یک کسی و قد توفار خود تفسیرم و گایی اوقات اصلاح از تفسیر چیه؟ دست میکشه دیگه معنای تفسیری بگیر نه مشخص معنای تفسیری توش نیست و قد توفار خود تفسیرم کلواقعت فیعوه هایل کتب نسل اون امایی که واقع میشه در اول کتاب اون امایی که در اول کتاب واقع میشه اما بعد بهازهی فواید فواید و سمدی یه تو هیچیه ها میرون اما شرط رو میپرمونه تحکیدم میپرمونه اما دیگه تفسیر چون مجملی قبلش چیزی که توضیحش بده اما اما رو که خوندیم جزه غروف آتفه البته و اما رو جزه غروف آتفه اون هم دوبومیه نه اولی اما, اما برکسته و تشمیلی به کس درمزه و تشدیده حرف و عصفه الان مشکول بنابرای قول مشکول اینه که این اما هرفت تو گفتید قول غیره مشکول میگه چی هرفت واق هرفت ما فقط اومده شب کنو فهم بعضی هم قایدن هر دو رو هم دیگه هرفت و اما هیشون حالایشون میگه الان مشکول اینه که ما هرفت و ترداد تفسیل و میاد برای تفسیل اما ایشون حالا ایشون میگه الان مشغول اینه که اما البرد و تر دل تفسیل و میاد برای تفسیل توضیح دادن نگاه کنید الان انا هده اینا اون قبلش هم باید مرحوم شهر می نشه آیه هست انا هده اینا یعنی چی انا هده اینا یعنی ما انسان رو راه نمایی کردیم و راه خودتیم هستویل یعنی به سراط مستقیم ما انسان رو به سراحات مستقیم راهنمایی نمایی کردیم خبیلی الان مجمله آدم میگه خوشون راه نمایی کردیم اما چی شد؟ ها؟ چه حالی پیدا کردن؟ میگه اما شاکرن و اما کفورن یا در حال شاکر بودن این انسان یا در حال بسیار فرخ کنندگیست کفوره یعنی میگه ما انسان را دستشی گرفتیم به راه حقیقی راه شدیم حالا این انسان چی میشه؟ میگه دو جور میشه یا میشه شاکر یا میشه؟ چفر اما شاکنن به اما چفر معلومه دیگه تفسیر میده نسبت به این همینه تو بحث محبول و مطلق همین کتاب بودی ما فشد دونه به اما منن وعدو و اما فدا هن که مو گفت آمر مطلق در جایی که برای تفصیل چیه محصول ده از همین اما برگرد تو دو بحث مفهول مطلق این که برگرد بده نیست ابهام که این وقت برای ابهام میاد و شک و تخییر برای اباهه که این وقت برای ابهامه ابهام یعنی چی؟ یعنی متکلم میدونه میخواهد بگی مخاطب بگی ندونه براش مهم باشه من میدونم دیشت که اومده میخوام میخواهد براشون مهم باشه میگم چی ها اما زیدون و اما هموری میشه چی؟ اما گاهی اوها شک نیچی؟ یعنی نه مخاطب می دونه چی متکلم می دونه خودش هم شک داره من واقعا نمی دونم که اومده زید بوده یا ام بیگم جا هنی ام ما زیدان و اما هم شک و افغان بخواست چی شد در افغان متکلم می دونه مخاطب نداند براش نمی گه شک کنه در شکل شک می گه ولی در شک خودش هم بعد تخییر تخییر اینه من یه چیزی رو به شما میگم بعد شما میتونید بین این دوتا جمع هم بکنید یعنی هر انجام بگید میگم اقره امم سرفه و امم نحوه بخوام امم سرفه و امم نحوه بخوان یا سرد یا نفت حالا شما میدید هر دورو با هم بکنه یا نه تخییر میشه هر دورو با هم جمع کنه آه اباهه چیست؟ اباهه میشه هر دورو با هم جمع کنه این رو بذارید در مثال اباهه تغییر. یعنی شما رو مختار میکنم توی یکیش این مثال رو بذارید برای اباهه برای تخییر میگم مثلا فرض کن هزد اما هندن و اما اختهار هزد اما هندن و اما اختهار. یعنی چی؟ یعنی دن بگیر یا هند رو یا خوهرش رو نمیشه جمع بین دوتا میشه برای تخییر پس بنابراین یا برای پام یا شک یا تخییر یا اواه و اما لازم اتون قبلن معتول قبل از معتوفان علیه به ها به ها یعنی به و اما قبل از معتوفان علیه الان نگاه کنید اما شاکرن و اما کفورن کدوم معتوفان علیه شاکرن کدوم معتوفه کفورن واقع چیه؟ اون به ها یعنی چیزی که باهاش عرض صورت گرمیده میگه یه اما لازمتون ببینید قبل از شاکرن هست یه اما لازمتون قبلن معتوبالای قبل از معتوبالای یعنی شاکرن معتوبالای در صورت که عرب شده است با چی؟ با یک اما اگر عرب شما با اما صورت کرد قبل از معتوبالای یه امای دیگر چیه؟ لازم ولا تنفک که ان غالبا و این امای دوم غالبا از باب منفک و جدا بگید نمیشه غالبا از واق جدا نمیشه پسش و اما شاکرن چی و اما کفورن اینکه بشه اما و واقش بیابده خیلی کمه شاید مثلا یک در سر دو درس سر برای و پرده دیزهایی داره که اینجا دیگه جاش نیست اگه رو بره و بر تشکیل اگه رو بسرش رو ما کردیم که چند قسمه چه شکله اصابی بل هاشا ببینید حتی اینا مباعثش شده ها با قد اینا رو رو کندیم نگاه بکنیم برای جنسه برد بله جنسه چه دو چه